سلام و درود و همه شما شنوندگان خوب و علاقمند به کانال هزار افسان. امروز هم با یک قصه زیبایی دیگه در خدمتتون هستیم به اسم سه موسیقیدان بریم که با هم دیگه بشنبیم. روزی روزگاری سه موسیقیدان خونشون رو ترک کردند و پا به سفر گذاشتند هر سه اونها موسیقی رو از یک استاد یاد گرفته بودند اونها با هم قرار گذاشته بودند که همیشه در کنار هم باشند. اونها به دنبال بخت و اقبال خودشون به سرزمین های دور سفر می کردند. با خوشحالی از جایی به جای دیگی می و زندگی کاملا خوبی داشتند. همه با شنیدن آهنگهاشون اونها رو بسیار تشویق و دلگرم می کردند. شبیه به دهکدهی رسیدند. در اونجا، چنان موسیقی زیبایی نواختند که همه حاضران کیف کردند وقتی دست از نواختن کشیدند سرگرم خوردن غذا شدند و به حرفهای افرادی که در کوش و کنار بودند گوش دادند اونها با دقت گوش دادند و از خیلی چیزهای شگفت انگیز باخبر شدند بالاخره گفتگوی روستاییان به صحبت درباره قصری کشیده شد که در همون نزدیکی ها بود مردم درباره اون قصر حرفهای عجیبی میزدند یک نفر گفت که گنجی پنهانی در اونجا وجود داره یکی دیگه گفت با اینکه کسی در قصر زندگی نمیکنه بهترین نوغذاها در اونجا تهیه میشه سومی میگفت که روحی پلید در بین دیوارهاش ساکنه روحی حراسنگیز که اگر کسی پا به قصر بگذاره جنازهش رو بیرون میفرسته همین که سه موسیقیدان در اتاق خواب تنها شدند، تصمیم گرفتند که سری به قصر مرموز بزنند و اگر شد گنج پنهان رو پیدا کنند و اون را برای خودشون بردارند. اونها قرار گذاشتند که هر کدوم جداگان دست به کار بشه. یکی بعد از دیگری برای دستیابی به گنج و سعادت باید یک روز کامل وقت بذارند. ویولانزن اولین کسی بود که تن به این ماجرا جویی داد. اون کاملا سرزنده و قبراغ و پردل و جرعت به سمت قصر رفت. وقتی به اونجا رسید دید که دروازی بیرونی بازه. انگار منتظرش بودند. همین که وارد محوته شد و پا پله ها گذاشت دروازی سنگین پشت سرش با صدایی بلند بسته شد و میلهی بسیار بزرگ در پشتش قرار گرفت. اما هیچکس در اونجا دیده نمیشد. وحشتی چند تمام وجود ویولونزن رو فرا گرفت. امیدی به برگشت نبود، ولی امید به دستیابی به طلا و دیگر گنجها به نوازنده دل و جرعت بیشتری داد و اون به راهش در قصر ادامه داد. از پله ها بالا و پایین رفت، به هر طرف سرک کشید، از تالارهای باشکو گذشت، به اتاقها سر زد و به هرمسراهای زیبا نگاهی انداخت. همه چیز به زیبایی چیده شده بودند و نظم کاملی در همه جا به چشم می‌خورد اما سکوتی مرگبار در اون فضا موج می‌زد هیچ موجود زنده‌ای در اونجا نبود حتی مگسی پر نمیزد. با این حال جوان احساس می‌کرد که روی خودش رو حفظ کرده اون به قسمت‌های پایین‌تر قصر رسید در آشپزخانه خوشمزه‌ترین و اشتها آورترین غذاها آماده شده بود در انباری پشت آشپزخانه آلی ترین نوشیدنی ها وجود داشت و در قفص شیشه های انواع مربا از هر گونه که تصور کنید چیده شده بود. آتشی تازه و حسابی در اجاق آشپسخون روشن بود و به نظر می رسید که دستانی نامری در حال بریان کردن گوشت هستند. با انواع سبزی ها ها رو تزین کرده و خوشخوراکترین های دیگه به بهترین شکل فراهم شده بودند. پیش از اون که ویولون زن چیزی به فکرش برسه، دستانی نامرئی اون رو به اتاق راهنمایی کردند. در اونجا میزی بود که غذاهایی که در آشپزخانه تهی شده بود، روی اون چیده شده بود. جوان نوازنده اول ویولون خودش رو برداشت و آهنگی زیبا نواخت. موسیقی در فضای ساکت تالارها پیچید. بعد پشت میز نشست و با اشتهای زیاد مشغول خوردن غذا شد خیلی طول نکشید که دری باز شد و مردی ریزه پا به اتاق گذاشت مرد ریزه لباس راحتی برتن داشت صورتش پر از چین و چروک بود و ریش خاکستریش تا سگکهای نقرهای کفشاش می رسید. مرد ریزه در کنار نوازنده نشست ویولون زن یک کارد و چنگال به کتوله داد و ازش خواست تا غذا بخوره بعد ظرف قضا رو بهش داد موجود ریزه سرش رو تکون داد به نظر می رسید خیلی دست و پاچ چون تکه گوشت از زیر دستش در رفت و کف اتاق افتاد نوازنده ویولن که آدم خشتینتی بود خم شد تا تکه گوشت رو برداره اما در یک چشم برهم زدن مرد ریزه بر پشتش پرید و اون قدر کتکش زد که بر اثر شدت ضربه تمام بدن جوان بینوا کبود شد بالاخره نوازنده نیمه جون به حال خودش رها شد اون از دروازه آهنی قصر که چند ساعت قبل سر حال و بارویی از اونجا وارد شده بود بیرون رونده شد هوای تازه حالش رو کمی جا آورد بعد از اینکه اندکی استراحت کرد با اندامی دردناک تلو تلو خوران به طرف ای برا افتاد که دو دوستش اونجا بودند هوا کاملا تاریک شده بود که به اونجا رسید. دو نوازنده دیگه در خواب بودند. صبح که شد، از دیدن ویولون زن در کنار خودشون خیلی تعجب کردند. اونها اون رو سوال پیچ کردند، اما اون که سر و صورت و تنشو پنهان کرده بود، خیلی مختصر به اونها جواب داد: خودتون به اونجا برید تا ببینید چه خبره. خیالتون رو راحت کنم، موضوع پیش پا افتاده نوازنده دوم که ترومپت میزد به طرف قصر را افتاد هر بلایی که بر سر ویولن نواز اومد دقیقاً بر سر اون هم اومد اول به خوبی ازش پذیرایی شد اما بعد به سختی کتک خورد با هزار زحمت خودش رو به مسافرخونه رسوند صبح که شد خودش رو مثل خرگوشی زخمی در به سرش جمع کرد و به دوستانش گفت که ورود به قصر تلسم شده اصلاً آشدهن سوزی نیست البته اون به دوستش هشدار داد که به قصر نره اما با وجود اختار اون و نوازندگی اولی، موسیقیدان سومی که فلوت میزد، تصمیم گرفت به قصر بره و شانسش رو امتحان کنه. اون با شجاعت بره افتاد. عزمش رو جزم کرده بود که گنج پنهان رو پیدا کنه و از آن خودش بکنه. اون بیواکانه همه جای قصر رو زیر پا گذاشت. در حالی که به سرسراهای باشکوه و خالی سرک کشید، با خودش فکر کرد که زندگی در اونجا مخصوصاً با وجود انبارها و گنجهای پر از مواد غذایی چقدر لذت بخش خواهد بود برای اون هم میز غذای کاملی آماده شده بود بعد از اینکه مدتی چرخید کمی فلود زد و زد زیر آواز اون مثل دو دوست دیگرش پشت میز نشست و آماده شد تا از غذاهای خوشمزه روی میز بخوره بعد سر و مرد ریزه با اون ریش درازش پیدا شد اون هم پشت میز غذا در کنار فلود نواز نشست جوان اصلا اعتنایی به ظاهر عجیب و غریب کتوره نکرد و با اون چنان گرم صحبت شد که انگار سال اون رو میشناسه بالاخره مشغول غذا خوردن شدم مرد تکه تکی گوش بر زمین انداخت فلود نواز که مثل دو دوست خودش آدم پاک سرشتی بود خم شد تا تکی گوش رو برداره در همون لحظه متوجه شد که کوتوله قصد داره بر پشتش بپره. اون به سرعت برگشت و کوتوله رو از ریشش محکم گرفت و چنان تکانش داد که ریشش یکجا کنده شد کوتوله نالان و زاران بر زمین افتاد به محض اینکه ریش کوتوله به دست جوان افتاد احساس کرد قویتر میشه و آمادگی رویارویی با هر چیزی رو داره بعد متوجه شد که همه اشیای داخل قصر رو که قبلا خبری از اونها نبود میبینه از طرف دیگه به نظر می میرسید که تمام نیرو و قدرت کوتوله از وجودش خارج میشه. کوتوله نالان و گریان گفت بده ریشمو پس بده. اگه این کارو بکنی تمام هنرهای جادویی رو به تو یاد میدم و کمکت میکنم که گنج پنهان رو به دست بیاری. با این گنج تا ابد خوشبخت میشی. اما نوازندگی باهوش جواب داد: باشه. ریشت رو پس میدم. اما اول باید اون چروکه قولادی عملی کنی. تا موقعی که این رو نکنی از ریشت خبری نیست این بود که کوتوله مجبور شد به قولش وفا کنه. هرچند که اصلا قصد انجام دادن چون این کاری رو نداشت. خیلی دلش میخواست که ریشش رو پس بگیره اون از جوان خواست که دنبالش راه بیفته. اونها از راروهای تاریک پنهانی سردابه زیرزمینی و تخت سنگ خاکستری خاک سری تا به فضای بازی رسیدند که به نظر می رسید به جهانی زیباتر تعلق داره بعد به رودی پر آب رسیدن کتوله با چوب دستش بر آب زد با این کار آب از وسط شکافته شد و بی حرکت موند اونها از خشکی وسط رود گذشتند زیبایی های اون طرف رود شگفت انگیستر از هر جای دیگهی بود راه‌های سرسبز زیبا از بین جنگل و چمنزار می‌گذشت. پرندگان با پرهای طلایی و نقرهی روی درختان ترانه می‌خوندند. خوندند. های زیبا و سوزکه های در هر طرف می و می خزیدند. جانوران کوچک دوست داشتنی در بین بوته‌ها و خارها پنهان می‌شدند. آسمان آبی نبود، اما به رنگ طلاق ناب بود و ستارگان دو برابر اندازه معمولی خودشون و بسیار روشنتر و درخشانتر از ستارگان آسمانی زمین بودند. جوان مات و مبوت مونده بود. بطولی او خاکستری اون رو به قصری بسیار بزرگتر و شکومنتر از قصر قبلی برد. در اونجا سکوت بسیار سنگینی حک فرما بود. اونها به همه جای قصر جدید رفتند. بلاخره به اتاقی رسیدند که تختی در وسطش قرار داشت که چهار طرفش با پردههای سنگین پوشونده شده بود. بر بالای تخت قفص پرنده آویزون بود و پرنده داخل اون در اون فضای ساکت ترانه های میداد. وتول گوشه از پرده را کنار زد و به جوان اشاره کرد تا نزدیک بشه بر بستری از ابریشم ناب تلادوزی شده دوشیزه‌ای بس زیبا خوابیده بود اون به زیبایی فرشتگان بود گیسوان طلاییش پیش در پیچ و پریشان روی شانه‌های مرمرینش ریخته بودند تاج الماس بر سرش برق می‌زد اون به خوابی مرگاسا فرو رفته بود و هیچ صدایی بیدارش نمی‌کرد مرد ریزه رو به جوان متعجب کرد و گفت ببین دوشیزه خفته رو ببین اون شاهدختی قدرتمنده این قصر باشکوه و این سرزمین افسون زده به اون تعلق داره اما صدها ساله که اون به خوابی جادویی فرو رفته در تمام این مدت هیچ انسانی نتونسته به اینجا راه پیدا کنه من به تنهایی مراقب همه چیز بودم هر روز به قصر میرم و قضا تهییه میکنم و جویندگان حریس طلا رو که به اونجا میان که مفصلی میزنم، در تمام این سالها از شاهدخت به دقت مراقبت کردم و ندیدم که قریبه ای به اون نزدیک بشه، تمام قدرت جادویم توی ریشمه و حالا که اون رو از من گرفتی درموندم و دیگه نمیتونم شاهدخت زیبا رو در خواب نگه دارم، اما میتونم گنج پنهان رو بر تو آشکار کنم، خب حالا دست بکار شو و هرچی میگم انجام بده، پرنده رو که در قفس بالای بستره بردار و بکش. اون با ترانه که سر میده شاهدخت رو به خواب فرو برده. پرنده رو بکش و قلب کوچکش رو در بیار و بسوزون و به صورت گرد در بیار و اون رو در دهان شاهدخت بریز. اون فورا بیدار میشه و قلب سرشار از عشق خودش رو به تو خواهد باخت و با تو پیوند زناشوی خواهد بست و قلم رو و قصر و گنجش رو به تو خواهد داد. خوتوله کمی مکس کرد کاملا درمونده شده بود جوان خیلی حوصله نداشت که منتظر بمونه هر چه رو شنیده بود با دقت و مو به مو انجام داد قلب پرنده رو سزوند و به گرد تبدیل کرد همین که گرد رو در دهان شاه دختری اون چشمان زیباش رو باز کرد و به صورت شاد جوان خیره شد شاه دخت از اینکه اون رو از اون خواب جادویی نجات داده از جوان تشکر کرد بعد باهاش پیمان بست که همسرش بشه در همون لحظه صدایی چون آزرخش در تمام قصر پیچید. در همه راه پله و اتاق ها صداهایی شنیده میشد. بعد گروهی از خدمتکاران، مردان و زنان به سوی سرایی که زوج خوشبخت در اونجا بودند به راه افتادند. اونها برای شاهدخت و داماد آرزوی خوشبختی کردند. بعد همگی در سراسر قصر پراکنده و سرگرم کار خودشون شدند. کتولی <تصفيق> خاکستری، همچنان برای پس گرفتن ریشش پافشاری میکرد. اون که قلبی پلید داشت میخواست با بازیابی قدرتش به خوشبختی اونها خاتمه بده. اون میدونست که اگر ریشش یک بار دیگه به چونش بچسبه، هرچه از دستش بربیاد خواهد کرد. اما فلوت نواز زیرک که از نظر هوش و زیرکی کاملا با کوتوله برابری میکرد گفت بسیار خوب، لازم نیست نگران باشی، قبل از اونکه از هم جدا بشیم به ریشت میرسی اما فعلا من و همسرم را تا قصرت همراهی کن کوتوله به ناچار قبول کرد همگی از راه‌های زیبای سرسبز و چمنزارهای پرگل گذشتند و به رودخونهای رسیدند که در سرزمین شاهدخت جاری بود و در واقع مرض قلمرو اون بود پلی در کار نبود و قایقی به چشم نمیخورد به آب زدن کاری نادرست بود شجاعترین شناگر هم جرئت نمیکرد خودش رو به دست امواج خروشان بسپاره. جوان به کوتوله گفت: چوب دستت رو بده تا راهی از وسط آب باز کنم. کوتوله که ریشش در دست جوان بود، چاره جز موافقت نداشت. اون صدایی از شادی در آورد و با خودش فکر کرد: همین که به طرف دیگه رودخونه برسیم، جوان احمق ریشم رو پس میده و من دوباره قدرتم رو به دست میارم. وقتی چوب دستیم رو به دست آوردم، نمیگذارم اونها به سرزمین زیباشون برگردند. اما مقاصد پلید کوتوله محکوم به شکست بود. جوان شادمان با چوب دست بر آب زر بزد و انواج بلا فاصل از هم جدا شدند و آرام گرفتند. کوتوله از جلو حرکت میکرد. همین که پاش به اون طرف رسید آبها به هم اومدند و راه بسته شد و شادخت و جوان در طرف دیگه سالم و تندرست بر جا موندند. نوازندگی جوان ریش کوتوله را رو از روی رودخونه براش پرتاب کرد. اما چوب دستی رو پیش خودش نگه داشت. به این ترتیب کتولگ برجنس دیگه هرگز نتونست به قلم رو به اونها پا بگذاره. زوج خوشبخت به قصر خودشون برگشتند و سالهای سال در کمال آرامش و در ناز و نعمت زندگی کردند. دو موسیقی دیگه هرچی منتظر دوست خودشون شدن اون نعمد. وقتی از بازگشتش ناامید شدند گفتند حتما در جای مشغول فلوت نوازیه این جمله سینه به سینه گشت و به مسئلی تبدیل شد که اون رو همیشه برای کسی به کار میبرند که دنبال کاری رفته و هرگز بر نگشته قصه ما به سر رسید امیدوارم از این قصه هم لذت برده باشید روز و روزگار بر شما خوش آیا تا به حال آرزو کردین به